اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم صاد و ذی الذکر به نام خداوند بخشنده بخشایشگر صاد سوگند به قرآنی که دارای ذکر است که این کتاب معجزه الهی است بل الذین كفروا فی عزت و شقاق ولی کافران گرفتار قرور و اختلافند كم اهلکنا من قبلهم من قرن فنادو, فنادو ولا تحین مناص چه بسیار اقوامی را که پیش از آنها هلاك کردیم و به هنگام نزول عذاب فریاد میزدند ولی وقت نجات گذشته بود. وعجیب و عجبو ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب آنها تعجب کردند که پیام بر بین دهنده ای از میان آنان به سویشان آمده و کافران گفتند این ساهر بسیار است اجعل الالهت واحدا این هذا عجاب آیا او به جای این همه خدایان خدای واحدی قرار داده؟ این راستی چیز عجیبی است. و انطلق الملع منهم انمشون واصبروا على آلهتكم این هذا لشیعون یراد سرکردگان آنها بیرون آمدند و گفتند بروید و خدایانتان را محکم بچسبید. این چیزی است که خواسته اند. ما سمعنا بهذا في المله الآخرة، ان هذا ان هذا الا اختلاق ما هرگز چنین چیزی در آیین واقصی نشنیده ایم این تنها یک آیین ساختگی است اون زین علیه الذكر من دیننا بل هم فی من ذكري عذاب. آیا از میان همه ما قرآن تنها بر او نازل شده؟ آنها در حقیقت در اصل وحی من تردید دارند بلکه آنان هنوز عذاب الهی را نچشیده اند. ام عندهم خزائن رحمت ربك العزيز الوهاب مگر خزاین رحمت پروردگار توانا و بخشنده نزد آنهاست ام لهم ملك السماوات والارض وما بينهما فليرتقوا في الاسباب یا <تصفيق> انک مالکیت و حاکمیت آسمان ها و زمین و آن میان این دو است از آن آنهاست. اگر چنین است با هر وسیله ممکن به آسمان‌ها بروند و جلو نزول وحی را بر قلب پاک محمد بگیرند جند هنالک مهزوم من الاحزاب. اینها لشکر کوچک شکست خورده ای از احزابند کذبت قبلهم قوم نوح و عاد و فرعون ذو الاوتاد پیش از آنان قوم نوح عاد و, و فرعون صاحب قدرت پیام بران ما را تکزید کردند و ثمود و قوم لوط و اصحاب الایکه اولائی که الاحزاب و نیز قوم سمود و لوت و اصحاب ایچه اینها احزابی بودند که به تکزیب پیام بران برخواستند این کلون الا کذب رسول فحق عقاب هر یک از این گروه رسولان را تکزیب کردند و عذاب الهی درباره آنان تحقق یافت و ما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها, واحدة ما لها من فواق اینها با این اعمالشان جز یک صیحه آسمانی را انتظار نمی کشند که هیچ مهلت و بازگشتی برای آن وجود ندارد و قالوا ربنا عجل لنا قبل يوم الحساب آنها گفتند پروردگارا بهره ما را از عذاب هرچه زودتر قبل از روز حساب ده اصبر علاما یقولون و اذکر عبدنا داود ذل اید اینهو اواب در برابر آنچه میگویند شکی باباش و به خاطر بیاور بنده ما داود صاحب قدرت را که او بسیار توبه کننده بود اننا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والاشراق ما کوها را مسخر او ساختیم كه هر شامگاه و صبحگاه با اون تسبیح میگفتند و طيرا محشوره كل له اول پرندگان را نیز دست جمعی مسخر او کردیم و همه اینها بازگشت کننده به سوی او بودند و شادادنم ملک او و اتیناه الحکمه الخطاب و حکومت او را استحکام بخشیدیم هم دانش به او دادیم و هم داوری عادلانه و هل اتاک نبؤ الخصم اذ تسور المحراب؟ آیا داستان شاکیان هنگامی که از مهراب داوود بالا رفتند به تو رسیده است؟ اد دخلوا على داوود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغا بعضنا على بعض فاحكم بيننا فحکم بيننا بالحق ولا تشطط وهدنا و اهدینا اینا در آن هنگام که بی مقدمه بر او وارد شدند و او از دیدن آنها وحشت کرد گفتند نترس دو نفر شاکی هستیم که یکی از ما بردیگری ستم کرده اکنون در میان ما به حق داوری کن و ستم روام مدار و ما را به راه راست هدایت کن إن هذا أخی له تسعو وتسعون نعجة ولی نعجة واحدة فقال أكفلنیها وعزنی فی الخطاب این برادر من است او 99 میش دارد و من یكی بیش ندارم اما او اصرار میکند که این یکی را هم به من واگذار وَدَرَ سُخَن بَرَّ مِنْ قَلْبِهِ كَانَ قَالَ, قال لقد ظَلَمَكَ بِسُؤَالِنَا عِجَتَكَ إِلَى نَعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبغي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا, إلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هم و ظن داود انما فتناه فاستغفر ربه, ربه و خر راکعا و الاب داود گفته مسلما او با درخواست یک میش تو برای افزودن آن به میشهایش بر تو ستم نموده و بسیاری از شریکان به یکدیگر ستم میکنند. مگر کسانی که ایمان آورده و اعمال صالح انجام دادهاند اما عده آنان کم است داوود دانست که ما او را با این ماجرا آزموده ایم از این رو از پروردگارش طلب آمرزش نمود و به سجده افتاد و توبه کرد و له لهو عندنا لزلفا و حسن ما این عمل را بر او بخشییم و اون از ما دارای مقامی والا و سرانجامی نیکوست یا داود اینا جعلنا که فی الأرض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 لهم عذاب شدید ما ای داوود ما تو را خلیفه در زمین قرار دادیم پس در میان مردم به حق داوری کن و از هوای نفس پیروی مکن که تو را از راه خدا منحرف سازد کسانی که از راه خدا گمراه شوند عذاب شدیدی خاطر فراموش کردن روز حساب دارند وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار ما آسمان و زمین و آنچه را میان آنهاست بیهوده نیافریدیم این گمان كافران است وای بر کافران از آتش دوزخ. ام نجعل الذين آمنوا و عمل الصالحات كالمفسدين في الأرض. ام نجعل المتقين كالفجاؤ. آیا کسانی را که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند، همچون مفسدان در زمین قرار می‌دهیم یا پرهیزگاران را؟ حَمْـتُن فَاجِرَان كِتَابٌ أَنزَلَ الله إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ این کتابی است پربرکت که بر تو نازل کرده این تا در آیات آن تدبر کنند و خردمندان متذکر شوند ووهبنا لی داود سلیمان نعم العبد این لهو اواب. ما سلیمان را به داود بخشیدیم چه بنده خوبی زیرا همواره به سوی خدا بازگشت میکرد اذ عرض علیه بالعشی الصافنات الجیاد به خاطر هنگامی را که اصرگاهان اسبان چابک تند رو را بر او عرضه داشتند فقال اینی احببتو حب الخیر عن ذكر ربی حتی, حتی توارت بالحجاب گفته من این اسبان را به خاطر پروردگارم دوست دارم و می از آنها در جهاد استفاده کنم او همچنان به آنها نگاه میکرد تا از دیدگانش پنهان شدند ردوها فطفق بالسوق آنها به قدری جالب بودند که گفت بار دیگر آنها را نزد من بازگردانید و دست به ساقها و گردنهای آنها کشید و آنها را نوازش داد و و على ثم ما سلیمان را آزمودیم و بر تخت او جسدی افکندیم سپس او به درگاه خداوند توبه کرده قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي انك گفته الوهاب گفت پروردگارا مرا ببخش و حکومتی به من عطا کن که بعد از من سزاوار هیچ کس نباشد که تو بسیار بخشنده ای فسخرنا له الريح تجری بی رخا، ان حیث اصاب پس ما باد را مسخر او ساختیم تا به فرمانش به نرمی حرکت کند و به هر جا او می خواهد برود والشياطين كل بناء و غواص و شیاطین را مسخر او کردیم هر بنا و قواسی از آنها را و آخرین مقرونین فی الاسفاد و گروه دیگری از شیاطین را در قلو زنجیر تحت سلطه او قرار دادیم او حساب. و به او گفتیم این عطای ماست به هر کس میخواهی و صلاح می ببخش و از هر کس می خواهی امساک کن و حسابی بر تو نیست و برای او نزد ما مقامی ارجمند و سرانجامی نیکوست و عبدنا ایوب اید نادا ربهو انی مسنی الشیطان بنصب و و به خاطر بیاور بنده ما ایوب را هنگامی که پروردگارش را خواند و گفت پروردگارا شیطان مرا به رنج و عذاب افکنده است هذا مغتسل بارد به او گفتیم پای خود را بر زمین بکوب این چشمه آبی خونک برای شستشو و نوشیدن است و له اهله و مثلهم معهم رحمتا من رحمتا منا وذکر لول الالباب و خانواده به او بخشیدیم و همانند آنها را بر آنان تا رحمتی از سوی ما باشد و تذکری برای اندیشمندان و خذ که ضغثا فضرب به ولا تحنس اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبِدُ اِنَّهُ اَوَّابِ و به او گفتیم بسته از ساغه های گندم یا مانند آن را برگیر و با آن همسرت را بزن و سوگند خود را مشکن ما او را شکی یافتیم که بنده خوبی که بسیار بازگشت کننده بود. کننده عبادنا ابراهیم و اصحاق و یعقوب اولیل ایدی و و به خاطر بیاورد بندگان ما ابراهیم و اسحاق و یعقوب را صاحبان دست نیرومند و چشم های بینا اننا اخلصناهم بخالصه ذكر الدار ما آنها را با خلوص ویژه‌ای خالص کردیم و آن یادآوری سرای آخرت بود و انهم عندنا من المصطفين الاخيار و آنها نزد ما از برگزیدگان و نیکانند و اذکر اسماعیل و اليسع و ذا و كل من الاخیار و به خاطر بیاور اسماعیل و اليسع و ذا را که همه از نیکان بودند هذا ذکر و این للمتقین لحسن مآب این یک یادآوری است و برای پرهیزگاران بر جام نیکوی است باغ های جاویدان بهشتی که درهایش به آنان گشوده است فيها يدعون فيها كثيرة و شراب. در حالی که در آن بر تخت ها تکیه کرده اند و میوههای بسیار و نوشیدنی ها در اختیار آنان است. و قاصرات الطرف اترا. و نزد آنان همسرانی است که تنها چشم به شوهرانشان دوخته‌اند و همسن و سالند. هذا این همان است که برای روز حساب به شما وعد داده می شود این هذا ما روزی ماست که هرگز آن را پایانی نیست و, این, لشر و این پاداش پرهیزگاران است و برای تغیان بدترین محل بازگشته است ج دو زخم که در آن وارد می شوند و چه بستر بدی است و غساق. این نوشابه همین و قساق است که باید از آن بچشند و آخر من شكله ازواج و جز اینها کیفرهای دیگری همانند آن دارند هذا فوج مقتحم معکم لا مرحبا بهم این هم صال النار به آنان گفته می شود. این گروهی است که همراه شما وارد دوزخ میشوند اینها همان سران گمراهی خوشامد آمد بر آنها مباد همگی در آتش خواهند سوخت بل انتم لا مرحبا بكم انتم قدمتموه لنا فبئس القرار آنها به رؤسای خود میگویند بلکه خوش آمد بر شما مباد که این عذاب را شما برای ما فراهم ساختید چه بدقرارگاهی است اینجا قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا ف النار سپس میگویند پروردگارا هرکس این عذاب را برای ما فراهم ساخته عذابی مزاعف در آتش بر او بیفزا و قالوا ما لا نعدهم من الاشرار آنها میگویند چرا مردانی را که ما از اشرار میشمردیم در اینجا در آتش دوزخ نمیبینیم بینیم اتخذناهم سخری امزاقت عنهم الابصار آیا ما آنان را به مسخره گرفتیم یا چشمها آنها را نمی بیند؟ این, این یک واقعیت است گفتگوهای خسمانه دوزخیان قل این ما منذر و ما من اله الا الله الواحد القهار بگو من تنها یک بین دهنده هم و هیچ معبودی جز خداوند یگانه قهار نیست رب السماوات والارض وما بينهما العزيز الغفار پروردگار آسمان ها و زمین و آنچه میان آن دو است پروردگار عزیز و قفار قل هو نبع عظیم. بگو این خبری بزرگ است که شما از آن روی گردانید. ما كان من, علم ال من از ملع اعلا و فرشتگان عالم بالا به هنگامی که درباره آفرینش آدم مخاصمه می‌کردند خبر ندارم. انما انا تنها چیزی که به من وحی می شود این است که من انزار کننده آشکاری هستم إذ قال ربك للملائكة إنی خالق بشرا من طین و به خاطر بیابرد هنگامی را که پروردگارت به فرشتگان گفت: من بشری را از گل آفرینم اذا و فيه من روحي له هنگامی که آن را نظام بخشیدم و از روح خود در آن دمیدم برای او به سجد افتید فسجد الملائکت كلهم اجمعون در آن هنگام همه فرشتگان سجده کردند الا ابلیس استکبر و کان من الكافرین جز ابلیس که تکبر ورزید و از کافران بود قال یا ابلیس ما منع که ان تسجد لما خلقت بیدی؟ از تکبرت ام كنت من العالین گفت ای ابلیس چه چیز مانع تو شد که بر مخلوقی که با قدرت خود او را آفریدم سجده کنی آیا تکبر کردی یا از برترین ها بودی قال انا خیر من خلقتنی من نار وخلقته من طین گفت من از او بهترم مرا از آتش آفریده ای و او را از گل قال فخرج منها رجيم. فرمود از آسمانها خارج شو که تو رنده درگاه منی و این عليك لعنتی الى يوم الدین و مسلما لعنت من بر تو تا روز قیامت خواهد بود وَإِلَى ربی فَأَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ گفت پروردگارا مرا تا روزی که انسان‌ها برانگیخته میشوند مهلت ده قالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ فرمود تو از مهلت داده شدگانی اله یوم الوقت المعلوم ولی تا روز و زمان معین قال فبعزتك لا اغوينهم اجمعين گفت. به بعزت سوگند همه آنان را گمراه خواهم کرد الا عبادك منهم المخلصين مگر بندگان خالص تو از میان آنها قال فالحق والحق اقول فرمود به حق سوگند و حق میگویم لَأَمْ لَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِنْ مَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ اَجْمَعِينَ که جهنم را از تو و هر کدام از آنان که از تو پیروی کند پرخواهند کرده قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ من وَمَا أَنَ مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ای پیام بر بگو من برای دعوت نبوت هیچ پاداشی از شما نمی طلبم و من از متکلفین نیستم سخنانم روشن و همراه با دلیل است این هو الا ذکر للعالمین این قرآن تذکری برای همه جهانیان است ولا تعلمن نبعه بعد حین و خبر آن را بعد از مدتی می‌شنوید